رسید مجد که ایام غم نخواهد ماند چونان نماند چون این نیز هم نخواهد ماند من ارچه در نظر یار خاک سار شدم رقیب نیز چون این محترم نخواهد ماند چو پرده دار به شمشیر میزند امرا کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند شجای شکر و شکایت زن نقش نیک و بدست است چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ما سرود مجلس جمشید گفتند دین بود که جام باد بیاور که جم نخواهد ما قنیمتی شمر ای شام وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ما توانگره دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند بدین رواق زبرجد نمشتند به زر که جز نکوعی اهل کرم نخواهد ماند زمه اهروانی جانان تمع مبر حافظ که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند